بسم الله الرحمن الرحيم أولاً جلسة كتاب الطهارة كتاب الطهارة باكيزكي فصل أنواع المياه وآقصامها فصل أولاً درابط با أنواع آبهاست وآقصام آبها المیاه التی یجوز بها التطهیر سبع میاهن آبهایی که جایز است با آنها پاکی حاصل کردن هفت آب می باشد یک ماء السما یکی آب آسمان که همون بارانه دو ماء البحر آب دریا سه ماء او آب رودخانه چهار ماء او آب چاه پنج ماء او العینی آب چشمه شیش ماء او آبی که از برف زب میشه و هفت ماء او البردی آب, آب تگرگ او آبی که از تگرگ به وجود میاد اگر جذب میشه او تبدیلی واقع میشه پس اینا هفت نوع آب بودن که تاثیر با اینا چه بود؟ جائز بود. نه انواع آب های بودن که تاثیر با اینا جائز بود. ثم المياه على اربعه اقسام سپس میگه آب ها بر چهار قسم این آبه هایی که تا کار کرتوزی داد این نوع آب ها تطهیر با اینا جایز بود ولی روی اینا یک سری حالت های میاد لیزه گفته ثم المیاهو على عربیات اقسام سپس آبها ها بر چهار قسمت یک طاهر مطهرون غیر مکروه قسم اول آبها اون آبیست که طاهرون خودش پاکه مطهرون پاک کننده هم هست غیر و مکروه بدون کراهت یعنی استيما... در استعمالش کراهتی نیست پاک هست پاک کننده هست در این پاک کننده کراهتی درش وجود نداره این کدام آمه و هو الماء المطلق و این همون آب مطلق است. رب هایی که ما خوندیمون هف نوع آب که به دست نخورده درمون آب مونده مونده اند و دو طاهرون متحرون مکروه نوی دومه آب قسم دوم آب اون آبیست که پاک هست پاک کننده هم هست متحرین پاک کننده مکروه منتها مکروه استفاده ازش مکروه این دیگه کدوم آبه و هو الماء المشمس و این آب مشمس است آبیست که زیر شمس بوده زیر خورشید بوده که البته مکروه استعمال این آب هنگامی که آب ای وجود داشته باشه اگه نداشته باشه که مکروه نیست و این کراحتش هم جهت نس و حدیثی نیست که وارد شده باشه بلکه از جهت طبی و پزشکی و سلامتی است البته در مورد مکروه بودنش باز هم شرطهایی آوردند اولا میگن اگر در اون مناطقی باشه که خیلی گرمه دو من در ظروفی همچون آهن و آهن باشه شرط سومش اینه که استعمالش در بدن باشه و شرط چهارم اینه که آب دیگه موجود باشه اگه موجود نباشه باز هم مکروه نیست پس این مطلقاً مکروهش ندوننستند بلکه با این چار شرط ظرفش اگر از طلا و نقره باشه باز هم مکروه نمیدونند بلکه اگر از آهن و و این چیزا باشه مکروش میدارن خب این است که فقه های ارجمن در نصوص نیامدند سه و طاهرون غیر و مطاهر نو، سوم یا قسم سوم آب اون آبیست که پاک هست منطقه پاک کننده نیست خودش پاکه روی چیز، لباسی چیز بریزه مشکلی نیست ولی نمیشه ازش وژو و غسل گرفت. میشه باش لباس شست اما نمیشه باش وژو و غسل گرفت. این کدوم آب؟ آب مستعمل. آب مستعمل این. آبیست که؟ ك... این آب. آبیست که؟ ك... برای وزو و غسل به کار رفته این آب اون آبیست که برای وزو و غسل به کار رفته پس آب مستعمل اون آبیست که یه بار باش وضو گرفته شده یا یه بار باش غسل شده دیگه با این نمی... آب نمیشه دوباره وضو گرفت و غسل انجام داد چهار و ماء نجسن چارمین نوع آب آب بله طاهر غیر متطهر دو نوع آب داریم یکی آب مستعمله که پاک نمیشه باش حس پاکی حاصل کرد و دو المتغیر بما خالطه من الطاهرات اون آبی که با چیزای پاک باش قاطی شدن شدند و اونو تغییر دادند ماستی باش قاطی شده آردی قاطی خلاص چیزی قاطی شده باش و اونو تغییر داده این آب پاکه ولی نمیشه باش پاکی حاصل کرد. نمیشه باش وزو گرفت و غسل کرد. پس تاهر و غیر متاهر اون آبی که پاک است. ولی پاک کننده نیست خودش بردو یکی آب مستعمله یکی اون آب که با چیزای پاکی که باش قاطی شدن اونو تغییر دادند. و چهار ما اون نجیسون. چهار چهارمین قسم آب آب نجیسه. و هو الذي حلت فيه نجاستهن. آب نجسهن آبه است كهنجاست درش افتاده. و هو دون القلتين و كم تر از دو قلهم هست. او كان قلتين فتغير. یا نا به اندازه دو قلهم هست. منطقه تغییر کرده پس آب اون آبی است که نجاستی درش افتاده و کمتر از دو قله یا نه بیش از دو قله است ولی تغییر کرده رنگ و تعم و بوش دیگه تغییر کرده در این حالت ولو اینکه بیش از دو قله باشه رنگ تام یا بوش تغییر کرده باشه این موقع نجسه والقلتان 500 رطل بغدادی تقریبا فی الاصح بعدم خودش توضیح آورده در رابطه با قلتان که چه اندازه است میگه 500 رطل بغدادی است تقریبا پانسد رتل بغدادی است تقریبا تقریبا سد دو لیتر میشه البته نگاهی که من در اسلام مغیب کردم اونجا آورده که بل لیترش 162 لیتر درآورده بود و نصف لیتر 162 لیتر و نصف لیتر خب خلاصه میگه زمانی که آب دو قله باشه کمتر از دو قله باشه و نجاست درش بیفته نجس میشه اگر بیش از دو قله بود زمانی نجس میشه که رنگ یا تم یا بوش تغییر کرده باشه یعنی اون نجاست درش اثر گذاشته باشه اثرش دیده بشه یا در رنگ یا در تم یا در بوش پس چهار نوع آب عب داشتیم آبی که پاک بود پاک کننده بود بدون کراحت آبی که پاک بود و پاک کننده بود منطقه مکروه بود که همون مشمس بود. آبی که پاک بود ولی پاک کننده نبود آب مستعمل بود و اون آبی که به حسیل چیزای پاک تغییر کرده بود چهارمین نوع آب آب نجس هست اون اون آبیست که نجاستی درش افتاده باشه و کمتر از دو قلعه باشه یا دو قله بیشتر باشه منتها تغییر کرده باشه فاصلون ال اعیان المتنجس تو و ما یطهر منها اون چیزای عینها و چیزهایی که نجس هستن و که از اونها پاک میشه و جلود تطهر المیتتی تدخرو به دباخ پوست و پوستهای مردار حیوانات مرده پاک میشه با دباغی و رنگکاری الا جلد الکلب و مگر پوست سگ و پوست خوک خنزیر و ما تولد من هو و آنچه که از این دوتا متولد بشه یعنی این دوتا با هم دیگه نزدیکی داشته باشند از این دوتا یک حیوانی به دنیا بیاد آمن احده یا یکی از اینها به دنیا بیاد یعنی از سگ به دنیا بیاد یا از خنزیر وعظم عظم المیتتی و شعروها نجیسون الا الادمی و استخان مردار و موش نجیس هستن جز انسان پس اون آیانی که والاعيان المتنجسه چیزهای نجس و ما یطهر منها و آنچه چه از اونها قابل پاک شدن است در این فصل توضیح شوند فصلو فصلن ما یحرم استعماله من الاوان و ما یجوز فصل بعدی در موضوع اون ظروفی است که استعمالش حرام و اون ظروفی که جایز است استعمالش ما یحرم استعماله من الاوان وعنشك حرام است استعمالش الظروف وما, ي... وما يجوز وعنشك جائز است ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة جائز نیست استعمال ظروف تلائي ونقري جائز نست استعمال ظروف كي كج... از جنس تلائي ونقري دروس شواشا ويجوز استعمال غيرهما من الاواني و جایز استعمال غیر اندو یعنی غیر از طلا و نقره من الانی از ظروف ظروفی که از چیزای دیگه است درست شده باشن استعمالشون جایزه مثل آهن مس آلمنیوم و چیزای دیگه فاصل فاصل بعدی استعمال آلت سواک استعمال وسیله مسواک آله سواک اون عبزاری که که مسواک میزنن و سواک مستحب فی کل حال میگه مسواک در هر حالت مستحب است زدنش پسندیده هست و مستحب <تصفيق> الا بعد الزوال للصائم مگر بعد الزوال خورشید این بعد از اینکه خورشید از نصف النهار رد میشه لصائم اون هم برای روز دار پس مسواق در هر حالت مستحبه جز بعد الزوال برای روز دار. و هو فی ثلاثه مواضعه اشد و استحبابا در سجا مستحبتر است. استحبابش بیشتر است. بیشتر مستحب هست. پسندیده تر هست. یک انده تغییر الفمی من ازمن و غیری، یک هنگامی که دهان تغییر میکنه به خاطر عزم به خاطر سکوت طولانی از ممانی کردن یا به خاطر نخوردن هم معنیش کردن خلاصه یک زمانی که بوی, بد، بوی دهان تغییر بکنه حالا چه به خاطر سکوت طولانی باشه چه به خاطر نخوردن غذا باشه بله و غیره و اسباب دیگر مثل خوردن پیاز سیر و اون چیزای دیگه که بوی بدی داره مثل سیگار و دیگر اشیاء پس در سه مواضع مسواک زدن استحبابش بیشتر میشه هنگامی که دهان تغییر بکنه یعنی بویش تغییر بکنه بعد بو بیشه و دو اندال قیامی من نوم زمان بیدار شدن از خواب و سه اندال قیامی الی سلات زمان بلند شدن برای نماز قبل از نماز قبل از نماز مسواکشو بزنه و بره برای نماز پس در این سه حالت زدن مسواک مستحب‌تر بود خب فصل فروض وضوء فصل بعدی در رابطه با فرزهای وضوست فروض الوضوء و سننه‌ش فرزهای وضو و سنت‌هاش و فروض الوضوء 6 تا اشیاء فرزهای شیش چیزند یک انیتو اند غسل الوجهی نیت انگام فرضای وزو شیش دامی باشند یک نیت انگام شستن سورت دو و غسل الوجهی شستن سورت سه و غسل الیدین الی المرفقین شستن دو دست تا آرنج ها یعنی شستن دو دست و آرنج ها چهار و مسخ و بعض رأسی مسح قسمتی اثر پنج و غسل و رجلین الى و شستن دو پا و با... کعبین اون دو تا استخان برامده این سمت و اون سمت پا که قوزک بشون میگن شش و ترتیب ما ذکرناه و ترتیب طبق آنچه که ذکر شد پس ترتیب هم در مذهب امام شافعی بزرگوار رحمه الله جزوه فروز هست اما و سننه اشرت و اشیاء سنت های وزو دهجیس می باشند یک اتسمیه بسم الله گفتن و دو و غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء شستن دو کف دست قبل از اینکه اونا رو در ظرف بکنه بل زمانی که خواب بیدار میشه یا خلاصه قبل از اینکه دستا رو در ظرف بکنه برای البته ز... بعد از بعد از خواب که روایت هست شستن دو کف دست قبل از داخل کردنشون در ظرف اون موقع دیگه اینجوری بود الان که تانکر از سوشیر آبه دیگه خب که ظرف تشتی نیست مرفه ها میشه ولی خب بازم این کارورد داره تو بعضی مناطقه سر جاش هست و المزمزه تو والاستنشاق سنت بعدی مزمزه هست تو استنشاق بی شفتن بینی و شفتن دهان و بینی یا به دهان و بینی بردن این هم جزء سنن است چهار و مسح جمیع رأس مسح کردن تمام سر جز سنت هاست پنج و مسح الادنینی ظاهری و باطن هما به جدید مسح کردن دو گوش هم ظاهرشون این پشت گوشو میگن و باطن هیما و این داخلشونو میگن به ما جدید با آب تازه مسحشون بکنه شیش و تخلیل و لحیت الكفتی خلال کردن ریشی پرپشت ریشی که فاصله میان ریش ها کم باشه پرپشت باشه. و تخلیل و اصابه و رجلین هفتمین سنت خلال کردن انگشتان دست ها و پاها دو دست و دو پا 8 و تقدیم الیومنا اليسرى مقدم کردن راست برچپ چپ اون ازای که دو مقدم کردن راست بر چپ سن سنت است 9 و طهارت ثلاثه ثلاثه که هر عضوی سه مرتبه شسته بشه امجوس سنت و طهارت ثلاثه یعنی پاکیزگی سه مرتبه سه مرتبه و دهمین ده سنت موالاته یعنی این که شخص پی در پی این اعضا رو بشوره فاصله ای بین شستن اعضا نگذاره از جمله کاری یا سخن گفتنی و امثال این چیزا خب البته حضور رو بحث شو اینجا تمام کرده و دعا رو نگفته سنت است. باز هم برای کسی که از وزو فارغ میشه که شهادتانو بگه بعدا دعای وزور بخونه که اللهم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطهرین دلبته در بعضی کتب فقهی شوافمیاد وجعلنی من عبادک الصالحین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لك خبين ما تبغي أن تشكد في قبودة وارد والي بسياري در روايات إن جاء معمولا كافش مكنك اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين خبتا إن كار اكتفاء مكني فصله های بعدی تهارت و جدا خواهیم خوند.